از بین تمام شگفتی های بدن انسان چیزی هست که وقتی من از بقیه رازآلودتره چیزی که بعضی از مردم از دیدنش قشم می از دست دادن نیمی از اون به قیمت زندگی شما تموم میشه. خون همونطور که برای بدن ما سر حیاتیه در فرهنگ ما نیز نقشی به سزا داره. چیزی که درباره صحبت می خون خونه که از نظر غلظت کمی غلیظ‌تر از آب اما واقعا ما درباره این مایع قلیز قرمز رنگ و رازالود و نیروی حیات بخش چقدر می‌دونیم من می‌خوام در مورد دنیای شگفت‌انگیز خون خودم کمی تحقیق کنم ادامه بده ادامه بده من یاد گرفتم چطور در یه چشم هم زدن نیروی خودم را افزایش بدم ور خدا چقدر سرده توی نقشه‌ای که می‌بینین یک سری بزرگراه خیابونه خب به نظرتون این چه معنی داره این نمای گردش خون منجیه چیزی که طی چند ساعت از طریق ام آی میشه اون دید میخوام بهتون نشون بدم که واقعا خون چه کارهایی میتونه انجام بده دنیای شگفت‌انگیز خون من از خون دادن نمیترسم چون در های از این برنامه برای یک سری از آزمایشات باید خون بدم. این یه کمی آزادهنده است و البته عجیب که بشینم و رفتن خون از بدنم رو ببینم. در واقع به این دلیل که ما در ذهنمون برای خون ارزش خیلی زیادی قائل هستیم. دارن از من حدودا لیتر خون می گیرن تا ریهون آزمایش های خاصی رو انجام بدن. با این مقدار خون میشه خیلی آزمایش انجام داد. آزمایشی که میخوام انجام بدم پنج تا از خصوصیات خون رو مشخص میکنه. من دارم با یکی از حیاتی ترین خصوصیاتش شروع می خصوصیاتی که می دونستنش خیلی خیلی تو زندگی به من کمک شایانی می اکسیجن من توی لندن زندگی و کار میکنم میدونین که شهر خیلی پر جمعیتیه بیشتر اوقات دوچه سواری میکنم چرا که هم ترافیک رو هزم میکنه هم ارزون تره و همینطور برای قلب و هم خیلی خوبه البته امیدوارم که دوچرخه سواری من رو همیشه رو فورم نگه داره هرچند این روزا فکر میکنم که کمی اضافه وزن پیدا کردم با رکاب زدن تنفسم امیختر میشه و اکسیژن بیشتری رو وارد ریه هم میکنم اما گذشته از ترافیک این شهر یک محدودیت دیگه هم وجود داره چون بعد از کمی رکاب زدن از اوله درد میگیره و دلیلش هم فشاریه که داره به گردش خون مبارد میشه خوب چیزی که من اینجا دارم دلوله آزمایشه که پر از خونه تیره و غلیز و قنیه حالا نگاه کنین که چی به سر این یکی میاد این, ها... این خوبه ولی تا حدی درست وقتی که من اکسیجن رو پومپ میکنم داخل خون یه اتفاقی میفته چیزی که شما دارین میبینین تغییر رنگه رنگش داره تبدیل به قرمزه کمرنگتر و شفافتر میشه این یه سرنقش از اتفاقی که همیشه و مداوم داره در های قرمز خون بدن ما میافته تعدادشون دقیق قابل شمارش نیست اما تقریبا خون شما شامل حدود 20 تریلیون گلبول قرمزه و هر ثانیه بدن شما 17 میلیون گلبول جدید رو میسازه هر بار که ما نفس میکشیم و با دم هوا رو به درون ریه ها میکشیم، خون ما روشنتر میشه و همینطور تغییر رنگ ادامه داره و از اون مهمتر اینه که داره نیروی حیات بخش ما رو تأمین میکنه. اما محدودیت هم هست. با اینکه خون مقدار زیادی اکسیژن رو در خودش نگه داشته، اما چرا رنگش روشنتر نشده؟ مهم نیست که من چقدر اکسیژن رو وارد خونه خودم کردم. هر سلیل رنگش عوض شد اما خون نمیتونه بیشتر از این اکسیژن بگیره و این همون محدودیته. حالا چی میشد اگر میتونستم خونه خودم رو عوض کنم تا اکسیژن بیشتری رو بگیره؟ اما حتی اگر هم میتونستم خونه خودم رو عوض کنم آیا واقعا خون من اکسیژن بیشتری رو نگه میداشت؟ برای فهمیدن این مثلت من به ورزش، تنبین و سلامتی اومدم. <تصفيق> ما اینجا آمدیم تا بالاترین میزان اکسیژنی رو که خون میتونه در خودش نگه داره را همدازی گیری کنیم باش را خوبه؟ بهش میگن میزان بالای اکسیژن محلول در خون خب ما کاملا آمدیم خودشه دو تا سه دقیقه خوبه؟ ادامه بده خوبه آلیه آفری آفریه خیلی زود احساس سوزش در هام کردم و همینطور رس کردم که قلبم زربانش بیشتر شده تا بتون اکسیژن بیشتری رو توسط خون به هم برسید. درسته. مایچه ها دارن خیلی سخت کار میکنن. زربان قلبت بالا رفته و این به این منیه که میزان اکسیژن رسانی قلبت به اندام ها داره افزایش پیدا میکنه. دارم میبینم که هم داره افزایش پیدا میکنه همه این کارا برای اینه که میزان اکسیژن بیشتری رو به ماهیچه ها برسونی تا جایی که دیگه نتونی ادامه بدی 20 ثانیه دیگه عالیه واقعا فشارش بالا رفته اون پاها رو بیشتر حرکت بده یالا یالا ادامه بده لیه. حالا استراحت کن آره علی سوال دارم این نقصی که در خون رسانی به ماهیچه‌ها است حتی بیشتر از کم آوردن نفس بکنم نه اینجوریه خب پس پاهات تو رو نگه داشتند این اصلی ترین چیزی که در بین همه مردم یکسانه این نقصیه که توی خون رسانی به ماهیچه هاست حتی بیشتر از کم آوردن نفس خب پس این ها بودن که اکسیژن بیشتری می‌خواستن آره خب ترکیبی از میزان تنفس و اکسیژنی که وارد گردش خونت می‌کنی نمیتونه اون تقاضا رو برآورده کنه و برای همینه که این روند اصلا می درسته خوب اینم از نتیجه ای من ببینم چقدر رو فرمم میتونه نگران کننده باشه خب چیزی که اینجا میبینیم حداکثر اکسیژن مصرفی بر اساس وزن بدن ته 35 میلیمت به ازای هر کیلو در دقیقه خیلی خوبه خب واقعا بده پس ها چون سه تا این تستو انجام داده بودم فکر کنم 35 36 بود ببین وقتی که سن از شهر سالگی رد بشه به نسبت به اساسش سن میزان حداکثر اکسیژن مصرفی هم به آرومی پایین و پایین تر میاد پس هر چی پیرتر میشی تونسی با همین تمریناتی که داشتی و انجام میدی در یه شرایط با و, و پنج برای آدمی به سنما، پس خوبه آه فکر کنم خوب باشه نه این دقیقا خوبه آه. خوب هست، اما خاص اون چیزی که باید باشه نیست پگره از محدودیتایی که قلبم و ریه‌هام می ایجاد می‌کردن، های قرمز خونم هم میزان زدنم زدنمو محدود می‌کردن. خب اینجا چی داریم؟ بله، شما الان روی این ساندوچ هستید. اگر هم اگرم بخواید میخوابید. این یه میکروسکوپ ویدئوییه. ما می‌تونیم اینجا های ریز زیر زبونتون رو ببینیم. بسیار خوب. ما باید بتونیم جریان گلوله قرمز رو هم ببینیم. خب حالا که زبونت رو به سقف دهانت بچسبون. نده را سعی می کنم تا از رگهای خونی رو پیدا کنه. نه داره سعی می کنه می رو پیدا کنه کوچکترین های دستگاه گردش خون بدنیم. خب ما اینجا می رو داریم. می راکا ها سایزهای مختلفی داره. تمام این نقاط سیاه رو که می به و تنها های قرمز خونه تو هستن که داخل می راکار جریان دارن. ما این چیزهای بسیار زیادی رو می بینیم که جریان دارن و اینها همون عواملی هستن که اکسیژن رو به جریان می دیدنش اگفتاوره درست مثل ماشین های کوچی که حمله بارن که در خیابان های باریک دستگاه گردش خون من حرکت میکنن و بارشون هم اکسیژنه فشار خون تو ربطی به خروج خون از قلبت نداره به زربان قلبت ربط داره باید این مرحله آخر رو هم بگذرونی تا بتونی اکسیژن رو به ماهی چهات برسون یه راه برای افزایش تعداد گلوبر قرمز خون برای بالا بردن توان ورزشی استفاده از دارویی که هم خطرناکه و هم غیر قانونیه. راه جایگزین برای افزایش تعداد گلوگوول قرمز تمرین ورزشی در ارتفاع بالاست هر دوشون برای مطالعه روی تأثیر ارتفاع بر بدن انسان زمانی رو در افررس گذروندند در این ارتفاع میزان اکسیژن موجود در اتمفئر انسان بسیار بسیار پایینه برای جبران این ضعف بدن ما شروع به بالا بردن میزان تولید های قرمز خون میکنه. خوشبختانه من نیاز ندارم به هیمالیا برم تا اینطور ای رو بگیرم پالس اکسی‌متر بله خیلی خوبه من فقط باید وارد این اتاق بشم خب بذارش روی انگشت تو وقتی که داری از این در عبور می‌کنی 12 درصد اکسیژن جذب می‌کنی انگار که 4500 متر بالا رفتی یه چیزی حدود ارتفاع کوه مونبلا خب اینجا یه ای خاص خواست دارم اما نروزش حال آدم خوبه آلی آره آلی این اتاق در ارتفاعات نیست و من قرار داخل این اتاق تا چهار ساعت آینده حبس بشم وقتی پاش پاشو داخل این اتاق گذاشت اولین چیزی که اتفاق میفته اینه که بدنش میزان کاهش اکسیژن هوا رو متوجه میشه و تنفاسش یه مقدار سخت‌تر میشه و قلبش هم تندتر و سخت‌تر کار میکنه به طوری که اکسیژن بیشتری در بدنش به جریان میفته تا بتونه این شرایط رو دوم بیاره. بعد از حدود یک ساعت من تقریبا متوجه اثراتش شد. سط اکسیژن خونم الان 80درصده که میشه گفت خیلی کمه یه کمی هم احساس خستیگی میکنم و خمیازه میکشم و دلم میخواد بشینم من یه طور غافلگیر شدم چرا که آرامش داشتم اما درون من تغییرات شاخصی شروع به اتفاق افتادن کرده بودند بدن من کمبود اکسیژن رو به خوبی حس کرده بود داشت واکنش نشون میداد و دا به همین دلیل باید که هورمون الکروپائیتین رو آزاد می کرد. این هورمون به صورت زربتی دستور ساخت گلوگول های قرمز رو صادر میکنه. بسیار خب چهار ساعت تمام شد. بسیار خب؟ ما می توی کنیم. <تصفح> بعد از چهار ساعت موندن در شرایطی شبیه به قله کوه باید که یک آزمایش خوند دم. سطح ترازو ویتروپویتین در خون من به صورت شوککننده چهل درصد افزایش پیدا کرده بود و اگر من یکم بیشتر داخل اوتاهی می‌موندم های قرمز خون من شروع به دو برابر شدن می‌کردند روشی بدون دارو که باعث تولید بیشتر گلوبول قرمز میشه و تعجبی نداره که دقیقا مثل یک در ارتفاع واکنش نشون بده اما مشکل خاصی هست برای تغییر در اندازه ها و رسیدن به نتیجه دلخواه خوشبینانه من باید که یک ماه در این اتاق میموندم. البته تجربه بدیم نبود. من با 20 تریلیون گلوول قرمز یه گشتی با دو دوچرخه در خیابونهای شهر میزنم تا از فرصتی که دارم برای قویتر تر کردن مایچه هام نهایت استفاده رو ببرم. اکسیژن البته که شروع کننده این داستانه. از دوران باستان مردم فهمیده بودند که خون یه وسیله حمل و نقله. فقط تفکرات مختلفی داشتن مردی بر اینکه چه چیزی رو حمل میکنه. رومه باستان فکر میکردن که خون در کبه تولید میشه و بعد به سراسر سر بدن میره تا روح مقدس شما رو به جای جای بدنتون برسونه. حتی فکر میکردن که خون تا حدی شخصیت افراد رو هم تعیین میکنه البته این تفکر هنوز در فرانک زیادی از جمله بریتانیا وجود داره. ما بعضی از مردم رو بینیم که خیلی معاشرتی هستن. بهشون میگیم خون گرم و به بعضی آدم ها که بی احساسن میگیم خون سرد. خون فقط اکسیژن که مواد حیات بخشی رو هم حمل میکنه. سوخت. دست درد نکنم ممنون. ما به طور متبسطه چند بار در روز بدونیم که حتی دربارهش فکر کنیم خون رو قند و چربی پر میکنیم. ام. این نمونه خون منه که چند ساعت بعد از اینکه اون وعده چرب خوردم از هم گرفته شده به خوبی هم تهنشین شده و شما میتونین گلگل های و بقیه سلول ها رو پایینش ببینین این مایه زرد رنگ رو هم که اینجا میبینیم پلاسماست. در واقع کمی هم تیره است چون که ریز ریز چربی از سخونهی که چربی خوردن واردش شدن. پلاسمام سرات خورشده غذایی رو که میخوریم تو بدن حمل میکنم. حالا برخلاف اون یکی نمونه خون منه قبل از اون سخونهی مفصل و همونطور که میبینین پلاسمای من توش خیلی شفاف داره. بیشتر از نصف خون ما از پلاسما ساخته شده و قابلیت شاخص دوم اون جذب حداکثری گستره گستری مواد قضایی که ما میخوریم و به صورت انرژی یا همون سوخت برای سلول ها استفاده میشه یا به صورت مواد اولیه برای ساخت بافتها و یا حتی به صورت منابع و ذخایر چربی اطراف بدن ما انباشت میشه آه به به چاله حالا چطوریه که غذایی که من می‌خورم ترکیب خونم رو تغییر میده برای فهمیدنش روز بعد من یه صبحانه متفاوت با روز قبل می‌خورم متأسفانه امروز کافی نداشتم اما بجاش آوکوتاگال می‌خورم آه خیلی خوب بود بعدش به مرکز تحقیقات میرم تا ببینم که این صبحانه متفاوت چه سری روی خون من داشته آه، اینجا چه مجموعه از مشک های نه اینجا اتاق تیپ سنجیه مقیاس بزرگ اس و ما شش تا دستگاه تیپسنج داریم مم. که به عنوان مقیاسگیر وزنی بسیار حساس کار میکن. اینطوری بعض تکشک ملکول ها رو نشون میده. میشه فهمید که این چه ملکلییه؟ این صبحانه که سپور رو پردازش می نه دقیقا ما نمونه خون شما رو به دستگاه داریم. در حال پردازش بدار نتیجه ها رو هم تا لحظه نشون میده به این روند میگییم مت در واقع این روش تجزیه و تحلیل اطلاعاته که با علم تغذیه هم تعامل داره به زبون زبونی این روشیه که به شما میگه غذاهای متفاوتی که در طول زندگی مصرف میکنین چه اثراتی روی شما خواهند داشت بعد از اون سبونی که خوردم هزاران مولکول متفاوت اینجا در خون من ظاهر شده و نکته جالبش اینجاست که چطور اونها به شکلهای دیگه تبدیل میشن خب چی میشه وقتی به شما نگاه در واقع داریم هزاران نوع مختلف اونها رو میبینیم. و اینجاست که حتی میتونیم بین دو صبحانه م. ای که در دو روز متفاوت داشتین مقایسه کامل و دقیق داشته باشیم. <تصفح> بعضی از اون هم داستانای جالبی دارن. بله بله ممنونم نرس. خب بذارین جالب رو اول بگم که گلوکوز یا همون قند گلوکوز شما تقریبا ثابت داده شده م. و این به ما میگه که شما به راحتی میتونید تونید سطح خون رو کنترل کنید. خب مجبورم م. چون تو خونه و پدرم از دیابتی با اینکه این قطعی نیست اما به هر حال بالا بودن سطح در خون خطرناکه ولی قابل مم. کنتروله کاش از چیزای دیگه رو هم فهمید که انتظارشون رو نداشت چیزی که خیلی شگفت‌زده‌اش کرده بود چیزی بود که تا به حال ندیده بود وقتی که من اون صبحانه چرب رو خوردم خون من مقوری پروستاگلندین نشون میداد که اینو اسید چربه و خب این داره به وجودی التهاب در رکای من اشاره میکنه و اصلا هم چیز خوبی نیست اگر به روز اول نگاه کنی میزان پروستاگلاندین اثر آیا یعنی التهاب داشتتم؟ آره و یه مقدار التهاب کامل حس میشه. نشون میده که تو باید واقعا در رژیم غذایی تجدید نظر بکنی چون وقتی با یک پر سوبانه چپ این میزان بالا بره خب خیلی نگران کننده است. التهاب نفسه بده اینطور نیست منظور اینه که من انتظار داشتم الان میزنه چربی بالا رفته باشم و در واقع همین التهابم می‌تونه به بیماری قلبی منجر بشه بله همینطوره فرقی فوق العاده‌ای هم که فهمیدم اینه که وقتی اولین بار به خون خودم نگاه می بینم که می‌تونه خیلی چیزا درباره رژیم غذایمون به ما بگه درسته همینطوره و اینکه حالا متوجه شدی که چه کاری باید انجام بدی نکته هیجان انگیزی که درباره متابولومیک وجود داره که میشه فهمید دقیقاً درون خون ما چه برای اولین بار امکان دیدن این که هر غذایی واقعا چه اصطری داره، اونم دقیقاً بعد از خوردنش رو برای ما ممکن کرده. ما به منی واقعی کلمه همون چیزی هستیم که میخوریم و این قابلیت بدن ماست که میتونه کیفیت و خواس غذاهایی که مصرف میکنیم رو به طرزی که برای بدنمون مفید باشه تغییر بده. مواد مقضی در طبیعت گونه های بیشماری از حیوانات هستند که خون ما براشون ارزش فراوانی داره. شپش پشه زالو بالاخره هر کدوم از اینها اتفاق افتاده که یک بار یا بیشتر فرصت پیدا کردن که خون ما رو بمکن. ما دیدیم که یکی از اولین وضایف خون رسوندن اکسیژن و مواد غذایی به بخشهای بدنه برای این کار از سرخ رکا، سیاه رکا و موی رکا استفاده میکنه و صد البته که این سیستم یک گردش بسته داره امروز نظریه گردش خون با اینکه نسبتاً نسبتا جدیده اما مثل گردش زمین به دور خورشید استفاده شده است جدیان رومی های باستان به روح حیات بخش اعتقاد داشتند و همین هم معتقد بودند که خون هر روز باز تولید میشه و در بدن یک سفره یک طرفه داره و در آخر هم از انگشتان و های ما به صورت زایاد خارج میشه. امروز برای ما این نظر خیلی عجیب میاد اما این دیدگاه بدون هیچ چالشی تقریبا نزدیک به هزار سال رواج داشت تا اینکه یک نفر یک آزمایش غیر طبیعی انجام داد. امروز در که پیشرفت ما از گردش خون انسان از همین جا یعنی بیمارستان بارد در عبایل قرن 17 شروع شد. در واقع پدیداورنده این تفکر ویلیام هاروی بود، یک پزشک برجسته و البته نچندان مشابه با بقیه نظری پردازان انقلابی. برای هاروی نظریه جایگزین شدن خون هر روز به معنی خروج مقدار زیادی خون مرده از بدن بود. بنابراین او تصمیم گرفت تا یک انجام بده. اون قلبه یه برداشت تمام فضای اونو با آب پر کرد و بعدم اونو توی زرف مدرج خالی کرد و مقدار آب رو اندازه گیری کرد سپس مقدار آبی رو که در قلب ریخته بود اندازه گرفت و با میزان آبی که با هر زربان از قلب خارج می مقایسه کرد این تقریبا یعنی ده لیتر خون در هر یک ساعت بود بنابراین باید چیزی در حدود 240 لیتر خون در بدن شما هر روز تولید بشه. پروازیه که بدن انسان اساساً ممکن نیست بتونه این مقدار خون را رو هر روز تولید بکنه و نتیجه این آزمایش همین بود که خون باید جریان گردش بسته داشته باشه. چارش کشیدن باورهای مردم چندان ساده نیست، بنابراین هاروی نظریه خودش رو برای 12 سال مسکوت گذاشت. در سال 1628 بود که شاهکار خودش را منتشر کرد. نظریه دموتر کوردیس یا قلب و جریان خون. یک کپی نادر از اون نظریه در موزه هانتاری در گلاسکو پشت هس سال‌ها نگهداری میشه. خب این کتاب یه نمودار داره که یکی از آزمایشات کلاسیک و باور نکردنی حرف رو به شما نشون میده من قصد دارم تا اونو مجددا انجام بدم براتون و اینجا من یه رک بند دارم و یه تیغ خب شما این سیرک رو اینجا میبینین؟ ها بزارارین بیدارش کنم همینجا. شد. در ابتدا من خون با با نگهتشتان انگشتم روی سیاهرک متوقف کردم. سعی میکنم که خون به سمت بالا حول بدم تا سیاه رک خالی بمونه. اما اگر من خون به زیر منطقه گرفته شده حول بدم دوباره سریع پر میشه. فقط به یه دلیل. خون درون این سیاه رک به سمت بالای بازوی من و به طرف قلب من حرکت میکنه. این به نظر چندان آزمایش هیجان انگیزی نیمده ما در زمان خودش با سابقه از عقاید متاسبانه و هیجان انگیز بوده و همچنین به علم تجربی در اروپا کمک شایانی کرده. با دورتون 400 سال به جلو بریم تا به امروز و حالا میتونیم ببینیم که چطور خون در بدن ما جریان داره اما زوشی که هاروی حتی خوابش هم نمیتونی صافیه. خب اینه دستگاه امارای هرچند من از تمام این دستگاه امارای به شدت بدم میاد چون من کلاستروفوی دارم و از فضاهای بستم میترسم هم. این دستگاه غلاس از تمام رکای اصلی خون بدن من عکس میگیره. خوب مایکل میتونی نفس تو بدی تو لطفا خوبه حالا بده بیرون تابه چیزی رو که بهتونششون میدم تا به حال ندیدین این نقشه گردش خون منه که در ساعت که زیر دست های بودم آماده شده بزرگ راههایی رو می که اصلی ترین راه گردش خون در امتداد بدن منه چیزی که شما الانداری بهش نگاه میکنین سخرک اصلی هستند یک شبکه پر سرعت حالا اگه به این شک سخرک کوچیکتر کوچیک و سیاهرک ها رو هم اضافه کنیم خیلی پیچیده تر میشه. با اضافه کردن مرک ها دیگه یک مجسمه کامل از بدن من بد میاد. در واقع خون بسیار مهمه هر سلول زنده در بدن من به طور میانگین در محاصره ستها میلیمت مورک قرار گرفته خب با یه حساب سرانگوشتی میشه گفت که حدود سد کیلومتر هشت هزار دوله کشی در بدن انسان وجود داره که به تنهایی برای دو بار کشیده شدن به دور کره زمین کفایت میکنه این دقیقا مشابه یک شبکه لولکی شیر گسترده و پیچیده است تا امروز پزشکان این شبکه را مورد مطالعه قرار دادن اما در دستگاه گردش خون ما یک راز بزرگ نهفته است و ما در ابتدای راه بازگشایی این راز هستیم اگر یک سخ که خون را حمل میکنه دوچار گرفتگی بشه جراحان نیان و برای رفع گرفتگی سیاه رک استفاده میکنن تا جایگذین اون بشه اما چرا؟ پاسخ این سوال از جایی به دست اومد که اصلا در حیطه پزشکی نبود. اینجا در کالج لندن مهندسین روز خودشون با تجزیه و تحلیل بر روی عبور هوا از سطوح آیرودینامیک های مسابقه‌ای و بالهای هواپیما می‌گذرونن. بروه اینجا هستن که در حال پیادستازی بعضی از تکنیک‌های آیرودینامیکی برای مطالعه روی جریان خون در سرخ رکا و سیاه رکا هستن. پیتر ویسنت مرکزی رو تحسیز کرده تا بتونه در مورد اتفاقات ناخوشایندی که میتونن در طی عمل جراحی بایپس قلب رخ بدن تحقیق کنه. خب چیزی که من دارم بهش نگاه میکنم قرار نشون دهنده یک رگ باشه بله درسته و این یکی هم نشون دهنده سیاهرگه و چیزی هم که در مجموعه اینها میشه دید ساز اتفاقی که در بدن ما رخ میده چیزی شبیه به عمل پسه خب پس من الان یه جراح هم و اینجا هم یه مشکل گرفتگی شبیه سازی شده و من هم باید به طور مثال یه سیاهرگ رو بردارم و اینجا در جای سهرگی که به سمت میره قرار بدم تا گرفتگی باز بشه حالا ما از جوهر رنگی استفاده می کنیم تا دقیقاً وقتی خون می خواد حرکت کنه رو شبیه سازی کنیم. خب اینجا می بینیم که وقتی خون در حال حرکته و باید مسیر خودش رو ادامه بده چه اتفاقی میافته؟ اینجا می بینیم که در این منطقه خون انگار گیر افتاده. جراحان به طور عمومی میخوان که رکای خونی رو به هم وصل کنن اما گاهی در نقطه اتصال یه گرفتگی ایجاد میشه دقیقا مثل اون چیزی که ما در اینجا شبیه کردیم مشکل اینجا اینه که شدت جریان ناپایداری که اینجا اتفاق میفته در واقع به دیواره ی رک فشار میاره و آه. باعث متورم شدن دیواره ی رک شده بود خونی که در این قسمت جمع شده به عقب برگشت و اتصال رو بنیاره برای درست دلا خود اینعمل به جکی گرفتگی قلب باز کنه خودش باعث گرفتگی جدید میشه وقتی اینجا متورم بشه عکس و عمل این تورم خون رو با فشار بر میگردونهه نظریه ما اینه که اگر ما کاملا روند بایپس رو بتونیم با شبیه و با جزئیات درک کنیم میتونیم شرایط ناپایدار رو درست درمان و عمل رو همونطور که باید باشه بی خطر انجام بدیم. حالا ببینیم چه اتفاقی میفته وقتی لوله ما خم بشه. البته با مقدار زاویه خم شده، جریان هم آهسته آهست‌تر میشه. تیم تحت نظارت پیتر در حال بررسی این مسئله هستند که چقدر این میزان خم شدن در رکا بر جریان خونی که از اونها عبور میکنه تأثیر می‌ذاره. ما این شبیه سازی رو روی یه سری صفحات خویا بررسی می اونها دارن عبور خون رو از آئورت با دقت نگاه میکنن. ترین سهرگی که از قلب بیرون میاد. به طور مثال در زاویه خمیده آورت شما تونیم به صورت طبیعی ببینیم که چه اتفاقی داره میافته. نه تنها خم میشه بلکه پیچ خوردگی هم داره و این با شکل مارپیچ خودش در روی جریان خون و سیر ترکیبش با اکسیژن هم تاثیر میذاره. و به ثبات جریان میتونه کمک کنه و از ناپایدار شدن شریه جلوگیری کنه. پس با این حساب شما خیلی اسکلتون راضی هستین که تونستین تا این در دانش پزشکی باشین خب بله قطعا پس تمام زاویه و پیچ و تاپای سرخ ما تصادفی و بی نیستند. گردش خون ما کاملا با همین مهندسی طبیعیه که کار میکنه تراحی شده تا به گردش خون ما و تمام عوامل وابسته به اون کمک کنه و همین تحقیقات بود که به تولید یک ابزار بسیار مفید در مورد جراحی قلب انجامید به این چیزی که داریم میبینین ستنت میگیم یه توری از جنس آلیاژ نیکل و تیتانیوم و جرهان از همین بهتر برای باز کردن رکایی که گرفتگی دارن استفاده میکنن ولی تنها مشکل اینه که اگر همین وسیله خودش خم بشه باعث ایجاد گرفتگی میشه. اما این استند جدیداً اخترا در نوع خودشه همونطور که به نظر میاد یه طوری ساخته شده که بتونه در پیچ و خم های رک ها خیلی خوب عکس عمل نشون بده به نظر خیلی ساده میاد اما این حاصل 20 سال آزمایش و تحقیق و تمام آزمایشات نشون دادن که عمر مفید این محصول هم در بدن بیشتره هم از نظر گرفتگی و هم از نظر پس دادن بدن بیمار نسبت به استانداردهای موجود سیستم گردش خون ما اجازه حرکت خون را به تمام اندام ها و سلیول های زنده بدن ما میده تا بتونه اکسیژن و مواد غذایی رو به همه جا برسونه. اما همینطور هم به خون اجازه میده تا کارهای بیشتر و مفیدتری انجام بده. من دارم که به شما نشون بدم که وقتی که بدنتون صدمه میبینه یا تحت یک حمله قرار میگیره چه اتفاقی میافته. و این سیستم جریان خون رو در سطح پوست ثبت میکنه الان به رنگ آبی هست که نشون میده همه چیز عادیه و هیچ اتفاقی نیفتده حالا اینجا رو خراش میدم خیلی مشتاقم ببینم که چه اتفاقی داره میفته در لحظه می بینید که چه میشه شه انگار یه حجم بسیار زیادی از خون به صورت لحظه ای تجمع پیدا می کنه و به سرعت به صورت حاله از قرمزون و نارالچی دیده می شه. اولین واکنش به این اقدام اینه که جریان خون در این بخش بیشتر میشه شه بنابراین هم گرم و قرمز میشه و هم احساس درد داره. امروزه ما می دونیم که تورم و یک واکنش طبیعی به صدمه است اما در گذشته همیشه این باور نبود. برای هزاران سالی نشانه ها به صورت علامت نمایانگر دمای بدن بود، عقیده ای که مردمان اون سال ها به این موضوع داشتند. گالان ها خون از بیماران خارج می تا شفا پیدا کنند. هجامت و برخی روش های خارج کردن خون برای حدود دو هزار سال یکی از اصلی تنی روش های درمانی بیماران بود. اونگاه دیناشام اتو داور بود که حتی توی خیابون همین کارو میکردند. اون سالها تو آرایشگری هم هجامت میکردند. دلیلی که علامت شاخص آرایشگری به صورت این مارپیچ دوباره بود، اشاره به همین نوع شغلیه. مارپیچ سفید نشانه بانداج سفید و تمیز و نوار قرمز هم نشانه خون بود. هجامت ممکنه که در بسیاری از بیماری‌ها باعث بهبود بشه، اما به صورت ناشانه انجام بشه میتونه باعث کشتن بسیاری از بیماران بشه. او اعتقاد داشتند که خارج کردن خون باعث به حرکت در آوردن تنه اون در بدن شده و بدن قابلیت مبارزه با ریشهای بیماری رو پیدا میکنه. گلوبول های سفید. بدن یک بزرگسال در شرایط سالم حدود 40 میلیارد از این سلول ها رو داره. اونها خط مقدم جبهه دفاع در دستگاه ایمنی بدن هستند. به طور ثابت اونها در حال نبرد با میکروب هستند. میکروب نظیر باکتری ها، ویروس ها و غارچ ها. هزار برابر بزرگ نمایی نشون میده که سلولهای بزرگتر همون گلوبه های سفریدن که دارن با دانههای سبز مهاجم مبارزه میکنن و اونها رو می بلن. اما دستگاه ایمنی ما چیزی بیشتر از یک نیروی واکنش سریع دفاعی در بدنه یک ارتش پدرانه میکروسکوپی که البته میتونه رفتارهای جالبتری هم داشته باشه برای نشون دادن قابلیت هاش دارم برای اولین بار در عمرم کاری رو انجام میدم که باید ببینید آیف سواری در جردان شدیدان ای که در مورد دستگاهی منی وجود داره اینه که نه تنها در واکنش نشون داده در مقابل خطر خوب عمل میکنه بلکه در پیشمینی خطر هم فوق العاده ای داره باید به طور جدی مراقب خودم باشم وای خدا. با فعال کردن واکنش کومیل ورم بتونم ببینم بعد یه کار پر استرس انجام بدم. وای خدا چقدر سرده. این کار نه فقط به طور فیزیکی استرس داره بلکه از جمعه روانی هم پر از استرسه. هدف وارد کردن هجم زیادی استرسه اما نه واقعاً صدمه دیدن. فقط یه لحظه. این منیشناس دکتر ناتالی ریدیل از دانشگاه لندن یه مقدار زیادی از خون منو می‌گیره. خوبه. یه مقدار اینجا رو فشار بگیم. آره. همینطوره. <تصفيق> وقتی من گرمی شدم ناتالی راست های های سفید خون رو برام افشا می سلول هایی که در زمان استرس به صورت تنشی واکنش نشون میدن مثل یک انسان بالغ رفتار میکنن همینطوری که افراد پیرتر میشن تعداد بیشتری از این سلول مسن رو میشه دید شما هم دارید سلول های جوون هم دارید آه، نسخه جوان. بله نسخه ایمنی جوون خوبه چی شد خب ما اینجا داریم سلول هایی رو میبینیم که بهشون میگن سلول های قاتل بلفطره شهرت این سلول ها به این دلیلی که اونها دطه استرس های روانی و فیزیکی واکنش نشون میدن این خط زمینه شماست و میتونیم ببینیم که اینجا دستت طراز پایینیه درسته. آه. آه بد نیست که وفاک هم دارن دو برابر میشن حالا یه چیز دهنده است. ده دقیقه چالش من با قایق ماشر رو چکوند و حالا سطح سلول های قاتل در گردش خون من تا حد پنجاه درصد افزایش نشون میدن. بعد از اینکه من پریدم توی آب سرد بدن من مستقیم وارد یک استرس بزرگ شد و به صورت شفاف تصمیم گرفت واکنش نشون بده برای همین به دستگاه ایمنی من دستور عمل کرده مستقیم داد. در وارد شدن یک استرس نه تنها دستگاه قلبی اروقی شما فعال میشه و انرژی رو ذخیره رو آزاد میکنه بلکه دستگاه ایمنی شما هم بسیچ میشه تا برای فرار از اون شرایط انرژی لازم رو داشته باشید. <تصفيق> این خیلی هوشمندانه است این یعنی <تصفيق> باید از این رفتار کاملا هدفمند و پیشبینی خوراهورده این سیستم‌ها بله. اعدانی کرد. منظورم اینه که وقتی شرایط عجیبی وران پیش اومد، یه جور هوشدار دقیق و بله. به موقع رو میدونسته که چه چیز عجیبی داره پیش میاد. این باعث شدن سیستم ها رو در حال آماده باش قرار میده که هوشیار باشید ممکنه یه جور صدمه عفونی تهاجم به ارگان‌های بدن اتفاق بیفته. خیلی خوبه که بهم به گفتن که من دستگاهی منی جوونی دارم اما این روشی که سلول های قاتل در خون من بسیج میشن تا آماده اقدام سری بشن منو تحت تاثیر قرار میده و خب البته که باید اینها خیلی سری برات عمل بشن لحظه به طور ثابت در مازری خطراتیم خون ما به طرز عجیبی سری حرکت میکنه به طور میانگین در هر دقیقه یک بار سلول‌ها وارد این سفره بسته میشن و از قلب به حرکتشون آغاز میشه همینطور به همین معنیه که به محصه اینکه من زخمی بشم خون به سرعت فرار میکنه و اگر متوقف نشه خیلی زود خودش به یک مشکل جدی تبدیل میشه یه زخم ساده و بعد از مدتی بیش از پنج لیتر خون میتونه از بدن به صورت خونریزی خارج بشه خوشبختانه بدن ما برای این مورد هم راه کاره بسیار پیچیده اما کاربوردی داره تا مطمئن بشه که اتفاق بدی برامون نمیخته درمان به محض اینکه خون از بدن خارج بشه یک اتفاق خارق العاده میفته این پنجمین خصوصیت کلیدی خون ماست و به هر شکلی به صورت‌های مختلفی تاثیر گذاره این, این انرژی از خون تازه بدن انسان درشو باز کنم بذارمشون جو تا ببینم چه اتفاقی میفته ممکنه نتونین این تغییر شگفت انگیز رو ببینین اما این خون تغییر ماهیت میده. حالا که من کجش کنم چیزی از لوله خارج نمیشه. خون کاملا لخته شده و لخته در واقع محصول سری واکنش های پیچیده شیمیایی. اتفاقی که درون خون میافته افته جزی از شگفتی های تکامله بیان به که 500 بار بزرگتر شده نگاهی بیاندازیم. این واقعا چیز زیباییه میتونین تعدادی گلوبول قرمز و تعدادی سفید ببینین که در یک شبکه به تله افتادن و در میان این ماده سلول های بسیار خاصی دیده میشن برای فهمیدن اون من به امستیتوی تحقیقات ویلیام هاروی اومدن جایی که بازم خون منو از من میگیرن تا سلول هایی رو که برای من واقعا جالبن رو ازش جدا کنن پلاکت ها نکصه مهمی که درباره ها هست اینه که اونها همیشه در پشت صحنه فعالیت میکنن. به طوری که اکثران برای مردم عادی فراموش شدن و خیلی در موردشون فکر نمیکنند اما به محض اینکه خونریزی شروع بشه اینها شروع به فعالیت میکنن و بلافاصله حفره خونریزی رو بند اورد و جلوی خارج شدن خون رو از رگ میگیره برای دیدن فعالیت اونها نمونه خون من باید داخل یک لوله به جریان در بیاد که شبیه یک رگ آسیب دیده است درست این که بخشی از بدن زخمیه سلام با سلام ممنون چیزی رو که در وحلی اول دارم میبینم تولید لختست خیلی زیباستم پلکت های کوچولو. این برای اولین باری که من دارم این سلول های کوچیک رو در حال فعالیت میبینم در ابتدا این سلول های به صورت دانه های سبز رنگ دیده میشم شروع به چسبیدن به هم میکنم تا حالا همچنین فعالیت متمرکزی رو ندیده بود اونها علامت میدن تا به هم ملحق بشن در طی یک دقیقه تودهی از سلولهایی به هم چسبیده لخته خون رو تشکیل میدن این روند در بدن ما بلافاصله در لحظه ایجاد بریدگی شروع میشد. در قسمت سوفراگی باید خیلی سریعتر اتفاق بیفته چرا که فشار بالای خون باعث میشه همه چیز سریع اتفاق بیفته و باید که جلوش گرفته بشه در این گردش خونتون در هر دقیقه یک بار کند مسیر و کنه بنابراین یک دقیقه کافیه تا تمام خون شما خارج بشه پس واکنش باید بسیار سریع اتفاق بیفته با بزرنمای حدود ده هزار بار میتونیم پلاکت ها رو ببینیم که مثل توپای اینجا جمع شدن وقتی فعال بشن اینها به صورت انگشتی رشد کرده و داخل هم چفت میشن اما ها خودشون به تنهایی نمیتونن جلوی خونیزی رو بگیرن ما به واکنش دیگری هم نیاز داریم تا جلوی خونیزی مرگبار رو بگیریم و با کمک یکی از کشنده ترین حیوانات روی زمین میتونم چگونه گین دوند رو به شما نشون بدم خب من اینجا یه نمونه از خونه تازه انسانی رو دارم به همراه یه نمونه از سم مار ماری که برقیده خیلی از انسانها یه خونخاره ترسناکه بسیار خب بزن بریم یکم این ترکیب رو تکون بدیم در طی چند ثانیه سم به صورت دهشتباری خون منو تغییر میده فکر میکنم که دیگه داره به صورت قلیستر و تیره تری در میاد من در واقع از این اتفاق شگف زدم با یه مقدار خیلی ناچیز از سم ببینین که اوه... چه اتفاقی داره میافته میتونین خون بسته شده رو ببینین خون به صورت جامعه شده در میاد و تقریبا شبیه به یه ماده جلهی شده فقط تصور کنین چه سعدمه رو میتونه ایجاد کنه سم مار در واقع اتفاقی که در محل برودگی رگ روخ میدر و شبیه سازی میکنه رشتههای بلندی از پروتئین هستند که ما یه خون رو به صورت قلیص شده در میارم. وقتی که ما زخمی میشیم هم به اتفاق مشابه برامون میفته. یه شبکه از پلاکت ها به هم میچسبن. بدون این واکنش استرالی هر بار که ما یه زخم کوچیک بر میداشتیم قطعا اونقد خونیزی میکردیم تا جونمون از دست بدیم. اما هنوز بیشتر از این هست. تحقیقات به خاصیت شفا بخش غیر ای در خون ما اشاره می کنند. سلام روز بخیر. من اغلب به کلیمیکای زیبایی نمیرم. اونم مخصوصا در کنزینگتون هم الان می خوام یک روش درمانی جدید را ازمایش کنم. اومدم هم یه مقداری خون بدم. گاهی به این روش می گن لیفتینگ صورت خوناشامی، پی آر پی یا درمان با پلاسمای قنی شده از پلاکت. نوعی درمان رو به ما هدیه کرده که علائم پیری رو از پوست ما رفع کنه. اول مقداری از خون من گرفته میشه تا به صورت متمرکز پلاسمای اون رو از پلاکت غنی کنم. بعد این مایع مستقیم زیر پوست صورت من تزریق میشه. این واقعا رضایت بخش نه؟ شما ماده شیمیایی یا چیز خارجی رو تزریق نمی‌کنید. چیزی که اینجا تزریق میشه از بدن خود آدمه، در واقع از بدن خارج میشه، فرابری میشه و دوباره به بدن برنمی‌گرده. این قدرت خونه. دقیقا این خاصیت درخشان و در عین حال ساده خون ماست چرا که اون قدرت شفا بدنه بدن خودمونه از نظر تئوری پلاکت های فعال شده و فاکتور های رشد باعث واکنش های شفا بخشی در پوست من شده در یک چشم بر هم زدن چرا این اتفاق میفته در از کاری که میکنیم که خونه من رو به صورت خودم برمیگردونیم خب چرا سخرگاه صورت من خودشون این کارو نمیکنن؟ خب بله به دو دلیل اول اینکه وقتی شما پلاسماهای غنی از پلاکش رو به اون منطقه گسیل می‌کنین فضا رو بازتر می‌کنن و همینطور با یه سری از زخم‌های ریز اون منطقه رو تحریک به فعالیت می‌کنن درسته پس من دقیقاً دارم یه مادی رو که خون خودمانو فعال میکنه پس این یه بخشی از روند درمانه دقیقاً من بعد از چند هفته یا چند ماه باید دقیقا انتظار چه اتفاقی بیفته؟ شما دقیقاً در بافت پوستتون این تفاوت رو حس کنید. امیدوارم پوستتون مثل پوست صورت یه نوزاد لطیف و درخشان بشه. <تصفيق> من الان تورم و احساس سوزش روی صورتم دارم که خب این به خاطر اون پلاسمای غنی شده است که دور تا دور صورت من تزریخ شده تا برام جادو کنه. البته نه به این زودیش تا دو هفته آینده من تاثیر این روند رو ببینم شادم یکی دو ماه طول بکشه تا پوست من دقیقا حسی رو شبیه به پوست بچه پیدا کنه منتظرم خب الان چند هفته از زمانی که من پلاسما غنی شده رو تذریف کردم گذشته البته حس میکنم پوستم کمی سافتر شده. منطقه وقتی اکسای قبل و بعد منو ببینی ببینید میتونین خودتون قضاوت بکنین. خیلی با آیندش امیدوارم اما اگر تصدیق کنین یک کم بهتر شده. این خصوصیت در واقع بخشی از قدرت خارقلاده درمانی و شفا بخشی رو به خون داده. برای قرن مردم اعتقاد داشتند که بسیاری از بیماری ها با خون درمان می و همینطوری که از اسرار جوانی در خون نه است. در پشت این قفسه‌های فلزی و کولاسا پروندههایی با حدود 350 سال قدمت وجود دارند. که اولین سرنخ رو در خودشون نگهداری میکنن و این موضوع بسیار بسیار فیلسوفان دانشمندان علوم طبیعی در اون احتم به سادگی جذب آزمایشات روی همه چیز شده بودند. در ابتدا در سال 1667 اعضای انجامن سلطنتی هم حیرت کرده بودند انتقال خون آن هم به طور مستقیم از یک حیوان به انسان اونا میخواستن آزمایش کنن که آیا خون میتونه شخصیت رو تغییر بده؟ بنابراین اونها شخصی رو که طبیعت سرکشی داشت انتخاب کردند. یه داوطلب به اسم آرتور کوگا که تحت انتقال خون از یک گوسفند قرار میگیره. و خب فکر میکردن که شاید کوگای سرکش تحت تأثیر خون این حیوان آرام آراموطی تغییر کنه. این آزمایش کوگا رو نکشت اما جدا از اون نظر یه موفقیت بود. با الهام از این موفقیت بود که رابرت بویل رئیس انجمن یک رشته آزمایشات بیشتر رو پیشنهاد کرد تا به قدرت دیگر خون آگاهی پیدا کنند. همینطور که اینجا میبینیم، رنگ موهای دافتالبان این آزمایش تغییر میکرده. باور میکنیم که انتقال خون حیوانات بتونه چنین تغییرات فیزیکی در انسان به وجود بیاره. و چه خواهد بود حاصل این عملیات تعویض خون یک سگ فرتوت و ضعیف با خون سگی جوان یا بلعیس ثر آن در سن سگ نمایان خواهد شد این یکی از شگفتنگیسرین سوالات این مردان بوده و اثبات میکنه که قبل از اینها کسی آزمایش انتقال خون را انجام نداده بود در آزمایش اصلی انتقال خون گوسفند به انسان خیلی عجیبه که داوطلب زنده مونده باشه ولی متاسفانه همین تنها موفقیت بود که باعث انجام آزمایش بعدی شد تقریبا 200 سال طول کشید که تعداد انسان‌هایی که به دلیل این آزمایشات کشته می‌شدند باعث شد تا این آزمایشات ممنوع بشه. این آزمایش اصلاً امن نبود تا زمانی که در قرن 20 مهمترین کشف بشر درباره خون اتفاق افتاد که بر طبق اون خون در چهار گروه خونی طبقه‌بندی می‌شد. انتقال خون امروز یک روند مستمر داره که جان ها نفر رو هر ساله از مرگ نجات میده. اما هرچه بیشتر درباره خون یاد میگیریم بیشتر به اسرارآمیز بودن اون پی می‌بریم. ما دیگه بخوند به صورت چیزی که روح مقدس و هم می‌کنه نگاه نمی‌کنیم بلکه به عنوان کالای مثل هر کالای دیگه نگاه می‌کنیم. در بریتانیا به تنهایی هر سال بیش از یک میلیون لیتر خون از دهنده ها به بیماران منتقل میشه. امروزه می دونیم که هر چقدر شما خون بگیرید کوچکترین تأثیری در شخصیت شما نخواهد داشت. اما گذشتگان ما کجا رو اشتباه رفته بودند؟ یکی از اکتشافات اخیر مجددن یکی از عقاید کهان در مورد قدرت خون در تغییر دادن رو زنده کرد. داستان بار دو تا موش شروع میشه. یکی حدود یه سالشه که بر اساس تو نمر موشا تقریبا اونو سال معرفه میکنن و در عوض یکی که موش تر و قوی تریه حدود 3 که میشه گفت هنوز کم سن حال با طبقه یکی از آزمایشات هم که در دهه‌ی 1970 انجام شد اونها این دو جوون رو با عمل جراحی به هم دیگه وصل کردن طوری که خون از موش جوانتر به موش پیرتر منتقل شد اما چیزی که اونها دریافتن خیلی عجیب ترام بود این بود که موش طبق قوی تر شد و چون چیز دیگه از آزمایش به دست نمیمد پنابراین دیگه نامان پیدا نکرد <تصفيق> تا امروز می‌دونیم که در دهی گذشته بعضی از تمایلات دوباره احیا شدم من به جنب اومدم تا یکی از پیشتازان این عرصه جدید رو در زمینی تحقیقات جوانسازی ملاقات کنم ببین چه عقیده خیلی قدیمی بود این به صورتی پیده جالب دنبال شد در واقع این ایده در سلول های بنیادیه. نخوسی باری که این عقیده مطالعه شد در گردش خون رد خیلی چیزها رو گرفتیم. این موضوع که چیزی از کسی به دیگری منتقل میشه تمام ایده رو مجددن احیا کرد و خوب بتوابع اون ما چیزهای جدید رو کشف کردیم. سلول های بنیادی منحصر به فردن چرا که میتونن به انواع متفاوتی از سلول‌ها تبدیل بشن و این بهشون این قدرت رو میده که بتونن بدن ما رو تأمید و ازش مراقبت کنن. وقتی ما جوانیم سلول های بنیادی ما بسیار فعالند اما در روند با درفتن سنما اونها آرام آرام خاموش میشن. مثل حافظه انسان ها حافظه موش هم با گذر عمر بدتر و بدتر میشه. این یه موش پیره. تنها یکی از این سراخ به لونه اون راه داره. بعد از پنجاه دقیقه جستجو هنوز اون نتونسته راه درست رو پیدا کنه اما نگاه کنین چه اتفاقی میفته وقتی ما یه موش دیگر رو با همون سن که تحت انتقال خون از موش جوونتر بوده رو میاریم عجیب اینه که موش تونست راه لونش رو تنها ظرف 24 ثانیه پیدا کنه وقتی این سابل و همکاراش به مغز موش پیری که با خون جوان درمان شده نگاه میکنه حتی ترقیبت شاخصترون هم کشف میکنه این نورون های سلول‌های سلول های عصبی ماست که به نظر میده اون جست که تقریبا شبیه یک بادومه زمینی خرد شده است یک سلول عصبی پیر در یک مغز پیره اون خیلی از اتصالاتش به سلول های دیگر رو از دست داده اما در قسمت راست ما یک سلول عصبی یک مغز پیر رو داریم که بهش خون جوان داده شده و از نظر ظاهر کاملا متفاوته وقتی که خون جوان رو بهش میدین ناگهان میبینین که شکل بدنه سلول به صورت یه هرم در میاد و این هم بقیه سلول‌های عصبی هن. این ارتباطات به یادگیری و حافظه کمک می‌کنند یه چیزی در خون جوان هست که میتونه در واقع حتی شکل نورون رو هم تغییر بده خیلی شبیه نورون‌های یک فرد جوان به نظر میاد دقیقاً شبیه اونه یه چیزی در خونه جواننگار ماشه سلول های بنیادی رو میچکونه و اونها فعال میشن انگار ساعت بیولوژیکی بدن رو به عقب برمیگردونن این کشفیه که واقعا پیامدهای سرسام‌آوری به دنبال داره رو نمونه‌های انسانی آزمایش کردین تا الان که نه اما بحث در باری بعضی از قوانین حقوقی در این رابطه شروع شده مخصوصا روی گرفتن مجوز آزمایش بر روی مم. افرادی که علائم آلزایمر رو دارن خوب حالا دارم پسرم رو آماده می‌کنم که به وقتش بهم خون بده. می‌تونید تصور کنین زمانی رو که مردم برن فروشگاه، خونه جوون بخورن و رو خودشون آزمایش کنن. می‌دونید بتونن حافظه‌شون رو به عقب و خاطراتشون رو از نبرن؟ امیدوارم که این کار نکنم این شبیه یه روی منطقی از نظام سرمایه‌دونی فکر نمی‌کنید؟ امید من من به اینه که شاید بتونیم عوامل حداقل از بالا رفتن سن یا فاکتورهایی از ضعف حافظه رو پیدا کنیم. و فکر کنم این راه بهتریه و بیشتر هم میشه کنترلش کرد. این موقعن عجیبه اینطوری نیست که شما چه این اسطوره‌شناسی از خون ارائه میدین اما ناگهان چیزی پشت قضیه آشکار میشه و در هر زمانی اسراری از خون پنهان هستند. اما امروز ما فقط داریم از زاویه ای به خون نگاه میکنیم و هرچه بیشتر آگاهی پیدا میکنیم بیشتر میفهمیم که چقدر خون مادهی منحصر به فرده. <تصفح> اگر ساویل و همکارانش درست بگن، افسانههای های کوهن درباره خون میتونن به کانونی از حقیقت اشاره کنن. شاید واقعا چیزی در خون هست که قدرت برگردوندن زمان رو بهش داده. خون یک شگفتی پنهان در بدن ماست. ما یک مایه پیچیده و بسیار شگفتانگیز که برای سالم نگه داشتن ما و هر ثانیه زنده بودن ما اهمیت داده. در هفته اخیر من خیلی بیشتر از قبل خونه خودم رو دیدم. استرارش رو آزمایش قرار دادم و محدودیتاش رو تحریک کردم. دیدم که با هر نفس من خودش رو سازگار بیکرد. با هر غذایی که میخوردم و هر باری که با خطری مواجه میشدم. از نظر من قدرت واقعی خون توانایی تغییر شکل اونه و همین قدرت چیزیه که در آینده پیشرفت های بیشماری رو فراسوی ما قرار خواهد داد. در طول مدت زمان ساخت این فیلم من کشف کردم که چرا خون ترسنا قابل احترام و در یک کلام استوره بوده و همینطور دیدم که چطور میتونه مورد استفاده، سوء استفاده و همینطور مورد مطالعه قرار بگیره و باور دارم که همه ما با این شرکت موافقیم که میگه خون واقعا اصاره اسبینه هایت است.